به گاه هجر تیمارش نداری چونان گردی که خود یادش نداری چو بر دل کیره گردد مهر جانان به از دوری نباشد هیچ درمان همه مهریز نادیدن بکاهد کرا دیده نبیند دل نخواهد و عشقا که نادیدن زدوده است آن کردش که گفتی خود نبود است فسانه گشتهای در هفت کشور همیشه خار بر چشم برادر مبادا در جهان آن شادی و کام او آید روان رازشتی نام شنیدم پند خوبت را شنیدم بریدم زیندل نادان بریدم نیایم در میان مهر جویان نورزم نیز مهر ماهرویان منم فردا و راه ماه آباد بگردم در جهان چون گور آزاد چونان کاری چرا ورزم به امید که جانم را از اون ننگ است جاوید از سوی دیگر شاه موبد ویس را پیش نشاند و او را اندرس ها گفت و سرانجام ویس بران شد که دل از مهر برگیرد و از آن پس طریق بردباری پوید چو بشریدین سخن وی سد دل آرای چو سر بوستان برجه است از جای اگر پاک است ام یا پلیده است چنان است او که یزدان آفریده است مرا از بحر سختی آفریدند چنان که از بحر خاری پروریدند که آورزم بدین به مهربانی که از در دست و ننگ جاودانی اگر رامین از این پس شیر گردد نپندارم که بر من چیر گردد شنچه چشم رویش را ببوسید که بشنید آنکه که زو هرگز نبشنید دیگر باره نوازش ها به نیکی و ستایش برفزودش رامین بران شد که از آن دیار دور گردد و به کشور ماه رود شاه موبت از این قصه شادمان شد و امارت چند شهر را به دوست پرد و آنگاه رامین برای واپسین دیدار نزده ویس شتافت چو فرقت خواهد افکندن زمانه پدی دارد ز پیشو را بهانه سیر سیرگشت از رنج دیدن شب و روز از پی جانان دویدن به دامی افتادن هر زمانی شنیدن سرزنش از هر زبانی به شاهنشاه پیغامی فرستاد که خواهم شد به بوم ماه آباد تنم را دردمندی میگدازد. گدازد آن هوا بهتر بسازد مگر یابم نشان تندرستی رها گردد تنم از رنج و سستی خوش آمد شاه را پیغام رامین بداد از پادشاهی کام رامین ریو گرگان کوهستان به داد. به فرمودش که مردم را دهد داد چه رامین خیمه بیرون زد به شاهی زناگه مرد بزمی گشت راهی به پیش ویست شد کورا ببیند چه دید باشد برنشیند ویست نخست با سخنان ناروا که گفت رامین را سخت بیازرد اما بیدرنگ پشیمان گشت و او را نوازش ها کرد و آنگاه دو داده دست در دست به سوی باغ‌های قمالود روان شدند و در پرتو خورشید بیرنگ پاییزی بر روی برگ‌های زرد پژمرده این سو و آن سو رفتند سخنها گفتند و سرانجام در میان ها و های جانسوز یکدیگر را بدرود کردند <تصفيق> سامانبر وست چون او را دو دید دل خود را پر از پیکان غم دید پشیمان شد بر آن بیهوده گفتار که از آن گفتار شد رامین آزار پس آنجا دست یکدیگر گرفتند به تنها هر دوبان در باغ رفتند رنگ روی ایشان باق رنگین سبوی زلف ایشان باد مشکین گز پیوند و بازی هر دو خندان گه درد جدایی هر دو گلریان سمن برویز کرده دید خونبار روخان همرنگ آلود دینار عقیق لبش پیروز گشته جهان بر حال او دلسوز گشته یکی چشم و هزار ابر گهربار یکی جان و هزاران گونه تیمار همی گفت ای گرامی بیوفایار کرا روزم کنی همچون شب تار؟ اگر مهر نوبت گشته است پیدا که هن مهر مرا مفکن به دریا مکن رام این جفای هجر با من مکن رامین مرا با کام دشمن چ روی خیش از پیشم بتابی به جان دیدار من جویی نیابی جوابش داد رامین سخندان که از راز من آگاه است یزدان حمیدانت که از تو ناشکیبم ولی که از بیم دشمن با نهیبم جهان از بحر تو شد دشمن من ز من بیزار شد پیراهن من مرا تا جان بود امید باشد که روزی جفت من خورشید باشد تویی خورشید و تا رویت نباشد جهانم جز چنان مویت نباشد از آن ترسم که تو روزی به گوراب ببینی دختری چون در خوشاب پس ازرم وفای من نداری دل مهرخیش خیش او را ز بس خوبان و محرویان که بینی ندانی زن کدامین برگزینی، چه روی خیش مردم را نمایند به روی و موی زیبا دل رو بایند چنان چن باد هنگام بهاران رو باید برگ گل از شاخساران، بگیرندت به زلف و چشم جادو چو گیرد چیر گور و یوز آهو گهان رامین گفت اگر ماه بیاید گرد من گردد یکی ماه لبانش نوش باشد بوسه دارو رخانش فتنه باشد چشم جادو دهد دیدنش پیران را جوانی لبانش مردگان را زندگانی به جان تو که مهر تو نکاهم به جای مهر تو مهری نخواهم پس آنگاه یکدیگر را بوسه دادند هزاران بار رخ بر رخ نهادند دو چشم خیش خونین رود کردند جو یکدیگر همی پد رود کردند هوا دوزخ شد از بس آه ایشان زمین از اشکشان دریای عمان دو بیدل هر دو چون شیدا بماندند میان دوزخ خود دریا بماندند چو رامین برنشست و رخت برداشت ز روی صبر دلبر پرده برداشت چو ابر تیره شد گرد سواران که او را اشک رامین بود باران نباشد هیچ عاشق را صبوری به خاص روز رو گاه دوری. رامین که از سوی برادرش شاه موبد مرزبانی شهرهای گرجان و تبرستان یافته بود در آن دیار امن و آسایش بسیار پدید آورد اما همواره در اندیشه ویس بود تا اینکه روزی چند برای نخجیر به ناحیت گوراب رفت و در آنجا به دام خوب چهری گلنام افتاد دل رامین به و مستی چون ناراکنده بود از درد و سستی به شب که از دوستان تنها بماندی ز خون دیدگان دریا براندی بدینسان بود حالش تا یکی روز به رهبر دید خورشیدی دید لفروز. لبش گشته شفای هر گزندی به برد آب هر شهدی و قندی زه برف و شیر و خون و می و خانی غند و نوش و شهد و در دهانی نهفته در قصب اندام چون سیم چون در آب روشن ماهی شیم فروهشت زه سرتاپای گیسو به بوی مشک و رنگ جان جادوی بر اینسان تنگ دلنوازی خوشاوازی سرافرازی سرفرازی به نازی چو باقی از مه و پروین بهارش بهاری از گل و سوسن نگارش چرا من دید آن سرو روان را بط باجان و ماه با روان را تو گفتی دید خرشید جهانتاب که از دیدار او چشمش گرفتا دو پایش سوست شد خیره فروماند ز سوستی تیرها از دست بفشان بهشت هست این که دیدم یا به بهشتی هور یا چینی نگاه ش او و یا چون اختر به واقه دلبری سر مش تل این که دیدم یا بهار است بهشتی بهشت‌گور یا چینی نگار است به باغ دلبری آزاد سرو است به دشت خرمی نازان قزر است در این اندیشه بود آزاد رامین که آمد نزد او آن سر به سیمین تو گفتی بود دیرین دوستارش فراز آمد گرفتن در کنارش به دو گفت ای جهان را نام ورشاه ز تو چون ماه روشن کشور ما یکی امشب به نزد ما فرودای آی قمین گشتی یکی ساعت بیا سای ز ما بپسیر یک شب می مانی که داریمت به ناز و شادمانی. میه گلگونت آرم روشن و خش که دارد بوی مشک و رنگ آتش بیشه شمبلی دارم تی خود روی آرمت آرمت همچند خوش بود زباق آرم گل و آزاد سوسن کنم مجلس چو دیبای ملفن گرامی دارمت چون جان شیرین که ما خود میمان داریم چونین جهان افروز رامین گفت ای ماه مرا از نام و از گوهر کناگاه چه نامی و از کدامین جایگاهی مرا خواهی بجفتی یا نخواهی اگر با تو کسی پیوند جوید از او مادرت کاوین چند جوید اگر قند را باشد بها جان به جان تو که باشد سخت ارزان جوابش داد خورشید سخنگوی سروش دلکشان هور پریروی نه آنم من که پوشیده است نامم کسی را گفت باید من کدامم که مهر از هیچ کس پنهان نماند همه کس مهر تابان را بداند مرا مادر به زیر گل بزاده است گل خوشبوی نام من نهاده است منم گلبرگ گلبوی گلندام گلم چهره گلمگونه گلمنا تو رامی می شان شهر برادر که مهر ویز با جانت برابر تو بشکی بیز ز دیدارش بگوراب اگر هرگز شکیبت ماهی از آ جدا مانیت زان شمشاد آزاد اگر دجله جدا ماند تو نطفانی که از فی بازگردی و با یار دگر ام بازگردی زو نشکیبی او را باش تنها تو زور رسوا و او نیز از تو رسوا تو بشید این سخن آزاد رامین به دل مر بیدلی را کرد نفرین دگر باره به نرمی گفت با ما سخنهایی که بردو را دل از را به دو گفت ای نگار سرو بالا بوت خورشید چهره ماه سیما مکن مرد بلاها را ملامت یزدان خواه تا یابد سلامت همه کار جهان از خلق راز است قضا را دست بر مردم دراز است اگر فرمان بری ماه دو هفته نباشی یادگیر از کار رفته زدی نندیشی و امروز بینی مرا از هر که بینی برگزینی به نیکی مر مرا انباز کردی به انبازی مرا دمساز کردی را بخشم زگیتی گیتی هر چه دارم وگر جانم بخواهی پیشت دارم هر که یابم از تو پیوند خورم بر راستی پیش تو سوگند سرایم را نباشد جست بانو روانم را نباشد جست و دارو کتاب باشد به گیتی کوه و صحرا رود جیهون و دجله سوی دریا ز چشمه آب خیزد زاب ماهی نمایت خور و شب سیاهی به تابت مهرماه آسمانی ببالد بالت بوستانی جهد باد سبا بر کوف ساران چرد گور ژیان در مرغ زاران تو با من باشی و من با تو جاوید به مهر یکدگر داریم امید نگیرم جستو یاری را در آغوش کنم آن را که دیدستم فراموش نبود از ویس نیکوتر مرایار به دو گیتی شدم زونیز بیزار جوابش داد خورشید گلندام من راما مرا از جادوی دام نآنم من که در دام تو آیم چون این بی رنج در کام تو آیم اگر مهرم به پروردن توانی وفای من به سر بردن توانی نیابی در جهان چون من یکی یار وفاورز و وفا جوی و وفادا نباید مرد را مرز خراسان همی در باش دلشاد و تناسان مرو دیگر به نزد ویس جادو زن موبت کجا شاید زن تو بکن پیمان که نه مهرش پرستی نه پیغامش دهی نه کس فرستی اگر با من کنی زنگگون پیمان تن ما را دو سر باشد یکی جان چو بشنید این سخن رامین از آن ما زبان خود ز پاسخ کرد کوتا پذیره کرد از گل این بهانه گرفتش دست و بردش سوی خانه چو رامین شد در ایوان رفیدا گرفته دست ماه سر بالا گوهر صد در پایش فشاندند به گاه زرنگارش برنشاندند سان رامین عشق گل را در دل گرفت به خانه او رفت و روزی چند بر نیامد که باوی پیوند مهر برنهاد پس آنگه نامداران را بخاندند دگر ره در و گوهر پس پسانگه گل به خیشان کس فرستاد همه کس را از این کار آگهی داد اگر صاحب دلان باب انایت بگو شایند بقیه داستان و آنچه بر دل دادگان گذشت در برنامه آینده تقدیم می شود همکاری هایده وفایی سیمین مجید نجاهی سرخوش محمود رحمانیپور، یوسف زمانی حسن ناهید همدانیان اسکرپور ازرا بریدون اسماعیلی سیروس ابراهیم زاده بهزاد فراهانی عاملی و آذر پژوهش تشته و تنظیم نادر وزیمپور موسیقی از علی تجویدی تهیه کننده برنامه امیر حسین خان خانشهری زیر نظر امیر فریدون گرکانی